لورولو از زمین و شیوه های انسان ها میگوید جن اوریون را در قلعه اش یافت و نقش را برایش گفت به طور خلاصه منظور اش این بود که بهتر است تازیانه زنهای بیشتری در گروهشان داشته باشند چون یک نفر تنها همیشه نمی توانست از وارد شدن همه سگها به درون مرز شفق جلوگیری کند چون چند گام آن سوتر از مرز جایی بود که اگر هرگز سگی از آنجا به خانه باز میگشت در ازای نیم ساعت گم شدن به تمامی فرسوده و به پیری آلوده می بود. لورولو گفت، هر سگی باید جن نگهبان خودش را داشته باشد که هنگام شکار با او بدود و وقتی سگ گرسنه و کثیف به خانه باز می گردد، خدمتکار او باشد. و اوریون ناگهان متوجه شد اداره شدن هر سگ به دست یک موجود هوشیار و تیزبین، چقدر متفاوت است؟ و به لورولو گفت به دنبال جنهای دیگر برود. بنابراین اکنون که هر کدام از سگها در لانه های سگی خودشان خوابیده بودند چون سگهای نرماده هر کدام در خانه جداگانه می خابیدند. جن در دشتهایی که میشناسیم به سوی شفق لرزانی که بر لبه محتاب میدرخشید و رو به سرزمین پریان رفت. از کنار کلبه سفید کشاورزی گذشت که پنجره سفید کوچکش رو به او داشت و با رنگ زردی در میان دیوار آبی روشنی که تهرنگی از محتاب داشت می درخشید. دو سگ به سویش پارس کردند و به دنبالش دویدند و اگر هر روز دیگری بود جن سر به سرشان می گذاشت و مسخرهشان می کرد. اما اکنون اندیشش آکنده از معمولیتش بود و بیشتر از قاصدکی. در یک روز طوفانی از ماه سپتامبر به آنها توجه نکرد و در حالی که برناک سبزها ها میپرید به رفتن ادامه داد و کمی بعد سگها پشت سرش پارس کردند و دور مانده بودند و مدت درازی پیش از اینکه که ستاره ها با نخستین تجلی سپید دم کمرنگ شوند به مرزی رسید که دشتهای ما را از خانه موجوداتی همچون خودش جدا میکرد و با یک جهش از شب زمینی بیرون و بالا پرید و چهار دست و پا بر خاک سرزمین مادریش سرزمین پریان فرود آمد. در میان زیبایی شگر و هوای سنگین که دریاچههای ما را به هنگام طلوع می درخشاند و تمامی رنگ های ما را کمرنگ می کند، سرشار از اخباری که میخواست با آنها همبتنونش را حیران کند می دوید. به خلنگزارهای جنها و به اقامتگاه های غریبشان رسید و فریادکنان جنها را به تجمع فراخواند و سپس به جنگلی رفت که جنها در تنع درختهای عظیم آن زندگی میکردند چون دو گروه جنهای جنگلی و جنهای خلنگزار وجود دارند دو طایفه از جنها که با هم دوست و مهربان هستند. و فریادکنان آنها را نیز به تجمعگاهشان اوگاهشان فراخواند و خیلی زود صدای خشخش گلها در جرفای جنگل پیچید. گویی هر چهار باد در حال وزیدن بودند و صدای خشخش بیشتر و بیشتر شد و جنها پدیدار شدند و یکی پس از دیگری کنار لورولو نشستند. و صدای خشخش همچنان بیشتر میشد و تمام جنگل را به هم می ریخت و جنهای قهوه ای از همه سو بیرون ریختند و گرد لورولو نشستند. جست و خیز کنن از میان تنهای درختان و از درون خفره پوشیده شده از سرخص آمدند و از فراز گوماکهای بلند روی خلنگزار ها آمدند. همان نامی را به کار میبریم که در سرزمین پریان بر این اقامتگاه های عجیب و غریب گذاشته شده است چون هیچ نام زمینی برای آن وجود ندارد. گوماک ماده خاکستری پارچه‌مانندی است که همچون چادری بر روی یک تیرک افتاده باشد. جنها در نور کدر اما درخشان شناور در میان ساق برگ‌های آن درختان جادویی با تنه‌هایی بلندتر از کهنسال‌ترین کاج‌های ما در نور تابنده برخارهای کاکتوس‌هایی که دنیای ما کمتر خوابشان را میبیند به گرد لورولو جمع شدند. هنگامی که توده قهوه‌ای جنها همه جمع شدند و کف جنگل چنان شد که گویی پاییز از دشتهایی که میشناسیم به سرزمین پریان آمده باشد و هنگامی که خشقش گلها فرو نشست و سکوت دوباره همچون اعثار پیشینش سنگین شد، لورولو قصه‌هایی هایی زمان برای آنها گفت. چون این قصه‌هایی پیش از آن هرگز در سرزمین پریان شنیده نشده بود، جنها همه پیش از آن به دشت هایی که میشناسیم آمده و شگفت زده بازگشته بودند. اما لورولو به میان خانه های ارل و به میان انسان‌ها رفته بود. و آنچنان که لورولو برای جنها گفت زمان در روز تا با سرعتی شگفتنگیستر از سرعتش در سبزهزارهای های زمین میگذشت. گفت که نور چگونه حرکت می‌کرد؟ از سایه‌ها گفت از اینکه هوا سفید و درخشان و روشن بود گفت گفت که چگونه زمین با نوری ملایم لحظه همچون سرزمین پریان شد و رنگها اندکندک پدیدار شدند و سپس نور و رنگ همچون اندیشهای گذرا در یک چشم برهم زدن ناپدید شدند از ستاره ها گفت از گاف ها و بزها و ماه گفت سه جانور شاخداری که عجیب یافته بودشان او در زمین بیش از آنچه فکر کنیم شگفتی یافته بود هرچند ما هم یک بار این چیزها را برای نخستین بار دیده ایم و جدای از شگفتی که در دشتهایی که می شناسیم احساس کرده بود قصه های بسیاری ساخت که جنهای کنجکاو را در سکوت بر کف جنگل میخکوب کرده بود گویی به راستی برگهای قهوه‌ای بودند که در ماه اکتبر بر زمین ریخته شده ناگهان یخ زده بودند برای نخستین بار درباره اجاق ها و گاری ها شنیدند، لرزان از آسیا های بادی شنیدند، افسون شده، به شیوه های انسان ها گوش دادند و هر از چند گاهی همچون هنگامی که لورولو از ها گفت صدای خنده ریزی جنگل را فرا گرفت. سپس گفت که باید کلاهها و بیل و لانه های سگها را ببینند و از درون پنجره نگاه کنند و با آن آسیا آشنا شوند. و در جنگل و در میان توده های قهوه ای جنها کنجکاوی برانگیخته شد چون نژاد آنها بسیار فضول است. و لورولا اینجا متوقف نشد و تنها بر کنجکاوی تکیه نکرد تا آنها را از سرزمین پریان به دشتایی که میشناسیم بکشاند. بلکه توجه آنها را با احساس دیگری نیز جلب کرد. چون درباره باره شاخدار متکبر، محتاط، بلند و درخشان صحبت کرد که چندان بیشتر از توجه گوسفندها به قورباقه ها به هنگام نوشیدن آب در برکه ها به همصحبتی با جنها اهمیت نمیدهند. همه آنها آشیانه‌های های شاخدار را می شناختند. میبایست رفتارشان را زیر نظر میگرفتند و این چیزها را به انسان میگفتند و بعد از آن کافی بود که به کمک سگها آنها را شکار کنند هرچند آگاهی آنها نسبت به سگها کم است اما همانطور که گفتم ترس از سگ در میان تمامی موجوداتی که میدوند جهان شمول است و آنها از اندیشه شکار شدن های شاخدار به دست سگها خسمانه خندیدند بدین ترتیب لورولو با کینه و کنجکاوی آنها را به آمدن به سوی زمین ترغیب کرد و می‌دانست دارد موفق می شبد. و آنقدر در دلش خندید که خوب گرم شد چون در میان جنها هیچ کس مشهور از آنی نیست که بتواند دیگران را شگفت زده کند یا حتی یک چیز غریب نشانشان بدهد یا با خوشمزگی به آنها کلک بزند یا بحت زده کند لورولو برای نشان دادن زمین را داشت که در میان آنان که شایسته داوری هستند آن اندازه جالب و غریب هست که بیننده کنچکاف را راضی کند. سپس جن خاکستری صحبت کرد جنی که بارها از مرز شفق زمین گذشته بود تا شیوه های انسان ها را تماشا کند و چون مدت زیادی شیوه هاشان را تماشا کرده بود زمان خاکستریش کرده بود. گفت آیا درست است که از جنگل هایی که همه میشناسند و شیوه های دلپذیر این سرزمین برویم تا چیز جدیدی ببینیم و در عوض زمان مان کند؟ و زمزبههای در میان جنها بالا گرفت که همچون صدای سوزکایی که در زمین به خانه میروند در جنگل دور شد و فرو خوابید؟ گفت: مگر اکنون امروز نیست اما آنجا میگویند امروز است و اما هیچکدام نمیدانند امروز چیست؟ کافیست: یک بار از مرز بگذریم و سپس دوباره برگردیم تا نگاهش کنیم و ببینیم گذشته است. در آنجا زمان بسیار مهاجم است، مانند سگهایی که از مرز ما میگذرند و برای بازگشتن به خانه پارس میکنند، کنند، ترسیدهاند خشمگین و وحشیند. جنها گفتند: همینطور است. هرچند چند نمیدانستند. این جنی بود که سخنهایش در جنگل ارزشمند بود؟ جن ارزشمند گفت بگذارید اکنون که امروز را داریم نگاهش داریم و از سوی جایی که امروز به این آسانی از دست می فریفته نشویم؟ چون هر بار که انسانها امروز را از دست می دهند موهایشان سفیدتر می شود اندامهایشان ضعیفتر و چهرهاشان غمگینتر می شود و به فردا نزدیکت و چنان جدی واجه فردا را گفت که جنهای قهوهی ترسیدند یکی گفت فردا چه می شود؟ جن خاک سری گفت میمیرند. و همان گونه که من دیدم دیگران زمین را میکنند و آنها را در درون زمین میگذارند. و سپس آنگونه که شنیده به بهشت میروند. و لرزشی از میان جنها گذشت و تا دور دست های کف جنگل رسید و لورولو که در تمام این مدت خشمگین نشسته بود و به صحبت‌های بدبینانه آن جن ارزشمند درباره زمین که میخواست جنها را وادار کند به آنجا بیایند و از شگفتیهایش حیرت زده شوند گوش داده بود به دفاع از بهش سخن گفت با گرمی گفت بهشت جای خوبی است هر چند داستان‌های اندکی درباره آن شنیده بود جن خاکستری پاسخ داد تمام رستگار شدگان آنجا هستند و پر از فرشته هاست یک جن در آنجا چه جایی دارد؟ فرشته ها او را می گیرند چون در زمین می گویند همه فرشته ها بال دارند آنها جن را میگیرند و تا عبد کتکش میزنند و همه ی جن های درون جنگل گریستند لورولو گفت ما به این آسونی گیر نمی افتیم. جن خاکستری گفت اونا بال دارند و همه با تعصف سرشان را تکان دادند چون سرعت بال را می دانستند. پرندگان سرزمین پریان اغلب بر فراز هوای سنگین پرواز میکردند کردند و بران زیبایی همیشگی و افسانهای ای که برای آنان غذا و آشیانه بود و گاهی درباره اش می خاندند چشم می دوختند. اما جنهایی که کنار مرز بازی میکردند و گاهی به دشتهایی که می شناسیم وارد میشدند هدفگیری و فرود سریع پرندگان زمینی را دیده بودند و همانگونه که ما از دیدن چیزهای بهشتی شگفت زده می شویم از دیدن آنها شگفت زده شده بودند و دانسته بودند که اگر آن بالها جن بیچاره ای را تعقیب کنند مشکل به تواند بگریزد جنها گفتند افسوس جن خاکستری دیگر چیزی نگفت و احتیاجی هم نبود چون جنگل سرشار از اندوه جنهایی بود که نشسته بودند و به بهشت می و از این می ترسیدند که اگر جرأت اقامت در زمین را بکنند خیلی زود در آنجا خواهند بود و لورولو دیگر بحث نکرد هنگام بحث نبود چون جنها غمگین‌تر از آن بودند که منطق را بپذیرند بنابراین خیلی جدی درباره چیزهای جدی صحبت کرد و واجه های ای گفت و با وقار ایستاد. هیچ چیز جنها را به اندازه دانش و جدیت سرگرم نمی کرد. آنها می توانند ساعتها به یک حالت موقر یا هر چیزی که نشانه جدی بودن است بخندند. بدین ترتیب لورولو دوباره آنها را به سباکسری که خلق طبیعیشان است بازگردند. پنگامی که چنین کرد بار دیگر از زمین گفت و داستان‌های غریبی درباره شیوه های انسان‌ها بازگو کرد نمی‌خواهم چیزهایی که لورولو درباره انسان گفت بنویسم چون ممکن است اعتماد به نفس خواننده‌ام را بیازارم و بدین ترتیب کسی را که تنها میخواهم سرگرمش کنم کنم. اما موج فریاد و خنده تمام جنگل را فرا گرفت و جن خاکستری دیگر نتوانست برای از بین بردن کنجکاوی که با آن گستردگی رشد میکرد، کنجکاوی دیدن اینکه چه کسی بود که در خانه ها زندگی میکرد و درست بالای سرش کلاهی داشت و بالاتر لوله بخاری و با سگها صحبت میکرد و با خوکها صحبت نمیکرد و جدیتش دارتر از هر کاری بود که جنها میکردند چیزی بگوید؟ و ناگهان هوس رفتن به زمین و دیدن خوک و گاری و آسیاها و خندیدن به انسان ها همه ی را فرا گرفت. و لورولو که به اوریون گفته بود چند جن خواهد آورد، به سختی توانست جلوی آمدن همه آن توده قهوه را بگیرد. خلق و حوث جنها خیلی تند دگرگون می شبد. اگر گذاشته بود همهشان به راه افتاده بودند و دیگر هیچ جنی در سرزمین پریان نمی چون حتی جن خاکستری تصمیمش را مطابق با بقیه تغییر داده بود. پنجاه جن را انتخاب و به سوی مرز سرگین زمین راهنمایی کرد و همچون ای برگ قهوه‌ای بلوت در بدترین روزهای ماه نوامبر با حرکت‌های تندی از تاریکی جنگل بیرون آمدند.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 همه و همه و همه در کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانهای صوتی atsine مهران دوستی